اسل 26 هم. اگر اوضاع غیر از این بود واقعا جای شگفتی داشت که من لوک لارک دختری که در 20 سال گذشته فقط اتوبوس شهرش را سوار شده بود ظرف کمتر از یک هفته برای سومین بار به کشور دیگری سفر کند وسایل ضروری را جمع کردم و ساکم را برای یک شب سفر بستم و برم بود و هر چیزی که فکر می کرد به کارم میآید آید بی داخل ساک می گذاشت. بعد از پله ها پایین رفتیم. رفتیم طبقه پایین. نصف پله ها را که رفتیم ایستادیم پدر و مادرمان توی حال ایستاده بودند. حالتشان مثل وقتهایی که شبها به خانه می آمدیم ترسناک بود. مامی به ساک دستم نگاه کرد و گفت چی شده؟ ترینه یک پله جلوتر از من ایستاده بود. گفت. لو داره میره سوئیس. همین حالان باید بره. امشب فقط یه پرواز مونده. همین که دوباره راه افتادیم مادرم جلو آمد. نه. دست به سینه بود و دهانش حالت خاصی داشت که برایم قریب بود. نه اصلا نمیخوام خودت قاطی این موضوع کنی. اگر اینطوری که من فکر میکنم باشه نباید بری. ترینا نگاهی به من در پشت سرش انداخت و گفت اما مادرم گفت گفتم نه قاطعیت خاصی در آهنگ صدایش بود اما اگرم نداره خیلی فکر کردم در مورد چیزایی که گفتی اشتباهه اخلاقا اشتباهه اگه خودتو وارد ماجرا کنی به یک جوون کمک کردی که خودشو بکشه بعد معلوم نیست خودت به چه حال روزی بیفتی. پدرم گفت مادرت درست میگه لو توی روزنامه و اخبار تلویزیون دیدم میدونیم زندگی تو خراب میکنه کالجت چی میشه؟ اگه سوء سابقه داشته باشی هیچ وقت نمیتونی درساتو تموم کنی کار خوبی به دست بیاری و خیلی چیزای دیگه ترینا حرفش را قطع کرد ازش خواسته که بره نمیتونه بیه اتنایی کنه و نره میتونه آره آره شیش ماه از عمرش رو صرف این خانواده کرد. اگه همه چیزو در نظر بگیریم چه چیزی نصیبش شده؟ از این خانواده خیلی به ما فایده رسیده. مردم پشت در خونهمون جمع شدن و هی میکوبن به در. هم که لابد فکر میکنه کلا برداری کردیم و اینجور چیزا. نه. لو عاقبت این فرصت رو پیدا کرده که بره کالج. حالا اینا ازش میخوان به اون مکان جهنمی تو سوئیس بره. خودشو درگیر چیزی کنه که فقط خدا ازش خبر داره. خب من میگم نه. نه لو، نمیتونی بری ترینا گفت ولی باید بره نه نمیره به اندازه کافی از خودش مایه گذاشته خودش دیشب گفت هر کاری از دستش بر میومد انجام داده مامی سرش را تکان داد این ترینه را هر قلطی میخوام با زندگیشون بکنم با پسرشون بکنم به ما مربوط نیست و منم نمیخوام لو خودشو درگیر کنه نمیخوام زندگیشو خراب کنه من گفتم. خیال میکنم خودم میتونم تصمیم بگیرم. مطمئن نیستم بتونی. لو، فقط یه دوسته. ویل مردیه که زندگیش به خودش مربوط میشه. تو نمیتونی خودتو وسط بندازی. اصلا تعجب میکنم میبینم حتی بهش فکر میکنی. قاطعیت شدیدی در لحن مادرم وجود داشت که با قبل فرق میکنی. بزرگت نکردم که به دیگران کمک کنی خودشونو بکشن تو میتونی کمک کنی بابا بزرگ بمیره؟ به نظرت بابا بزرگ هم باید ببریم به با اون خراب شده؟ بابا بزرگ فرق میکنه نه چه فرقی؟ کارایی که قبلا میکرد حالا نمیتونه اما زندگیش ارزشمنده همونطور که زندگی ویل ارزشمنده مامی من که چنین تصمیم ندارم تصمیم ویله قسم فقط کمک کمک؟ تا الان حرفی به این مزخرفی نشونده بودم لو هنوز بزرگ نشدی چی چی ندیدی گرمی و سردی روزگارو نچشیدی نمیدونی چنین چیزی با تو چیکار کار میکنه تو رو خدا فقط بگو اگه بهش کمک کنی خودشو بکشه شبا چطور میخوای بخوابی؟ تو میخوای کمک کنی یه جوون خودشو بکشه اصلا میفهمی یعنی چی؟ تو میخوای به اون ویل نازنینو با اوش کمک کنی خودشو بکشه شبا خوابم میبره چون به ویل ایمان دارم که خودش میدونه چه چیزی براش خوبه و چون چیزی که براش بدترینه حالا دیگه اونقدر نظرش بد نمیاد که بخواد تصمیمشو عوض کنه کاری برای خودش بکنه به پدر و مادرم نگاه کردم همه زورم را میزدم متوجهشان کنم و چه نیستم عاشقشم آشقشم نباید تنهاش بذارم تحملشو ندارم اونجا نباشم و ندونم ندونم که آب دهانم را گرد دادم بنابراین میرم بله میرم هیچ نیازی هم ندارم دنبالم بیفتین یه درکم کنین خودم از پس همه چیز برمیام میرم سوئیس حالا هرچی میخواید بگید راه روی گوچک خانه در سکوت فرو رفت. مامی طوری به من زده بود که انگار باورش نمیشد خودم باشم. یک بله پایین تر رفتم. میخواستم دلجویی کنم. ولی او یک بله عقب رفت. مامی من به ویل بدهکارم. کارم. برم. فکر میکنه کی فکر رفتم به کالج به سرم انداخت. خیال میکنی کی تشفیقم کرد کاری برای زندگیم بکنم. سفر برم برای خودم آرزوایی داشته باشم ها کی ترس فکرم و عوض کرد حتی در مورد خودم همش فیل بود توی این بیست 27 سال عمرم فقط توی این شش ماه گذشته بود که کاری انجام دادم زندگی کردم پس اگه از من میخواد برم سوئیس میرم حالا نتیجش هر هرچی میخواد باشه ایستده و به هم زل زده بودی ترینا و بابا به هم نگاهی کردند. گویی منتظر هم بودند تا یکی حرفی بزند. ولی مادرم سکوت را شکست. لویزا، اگه رفتی دیگه بر نگرد. کلمات مثل ریگ از دهانش بیرون میریخت. با ناباوری به مادرم چشم دوختم. نگاهش سازش نپذیر بود. منتظر بود واکنش مرا ببیند. گویی یک بار دیواری بین ما سبس شد، که قبلا وجود نداشت. مامی حرفم همینه. هیچ فرقی با قتل نداره. جوسی برنارد عین واقعیته من نمیتونم دستم و به این جنایت آلوده کنم. یادم میاد با خودم فکر کرده بودم که کاترینا را هیچ وقت مردد ندیده بودم. دست بابا را دیدم که روی بازوی مادرم قرار گرفت. نمیدانم میخواست آرامش کند یا قصد سرزنش داشت. فکرم دیگر کار نمیکرد. بعد بدون اینکه بدنم واقعا دارم چه کار میکنم آهسته از پله ها پایین رفتم و از کنار پدر و مادرم رد شدم و به طرف در خانه رفتم. لحظه ای بعد خواهرم دنبالم آمد. گوشه دهان بابا پایین آمد مثل اینکه با خودش در کشمکش بعد به طرف مادرم برگشت و دستش رو روی شانهش گذاشت چشمان مادرم صورت پدرم را میکاوید طوری که انگار میدانست چه میخواهد بگوید بعد پدرم کلیدش رو برای ترینا پرت کرد. ترینا با یک دستش گرفت پدرم گفت از در پشتی برید از توی حیات خونه خانم دایرتی با ون برید صبر ون که باشید متوجهتون نمیشم اگه همین الان برید و ترافیک هم سنگین نباشه شاید به ماخه برسید میکاترینا گفت هیچ فکری داری که اوضا چطوری پیش بره؟ یک به من نگاه کرد با سرعت زیاد در آزاد راه در حرکت بودیم نه حواسم به کار خودم بود داشتم توی کیف دستیم را نگاه می کردم تا ببینم چیزی جا گذاشتم یا نه همه صدای خانم ترینر را در گوشم می شنیدم لویزا لطفاً میای. میدونم با هم اختلاف داشتیم اما هملاوفن بیا اومدنطان حیاتیه. ترینا ادامه داد کوفتی تا حال ما می رو اینطور ندیده بودم گذرنامه کیف پول کلید کلید چرا؟ برای چه من دیگر خانه ای نداشتم کاترینا دوباره زیر چشمی نگاهم نگاه کرد منظورم اینه که بد جوری قاطی کرد. در از شکه شد. ولی بعد کوتاه میاد نه؟ وقتی اومدم خونه و بهش گفتم که بار دارم فکر میکردم تا آخر اون با حرف نمیزنه. همه فقط دو روز طول کشید. بعدش با هم حرف زد. صدایش را میشنیدم که کنارم وراجی میکرد. اما اصلا حواسم به او نبود. تمرکز حواس نداشتم. فشار عصبی شدیدی روی من بود. داشتم میرفتم به دیدن ویل. هرچه بود، حالا کار خودم را کرده بودم و میرفتم به دیدنش. حتی اسم کردم فاصله بین ما هر لحظه کمتر میشود. یک تناب کشی بود که ما دو سرش بودیم. ترینا؟ بله. آب دهانم را خرد دادم و گفتم. کاری کن که از پرواز جانمونه ویژگی اصلی خواهرم از مراس است. بدون آن هیچ است. حق تقدم را رعایت نکردیم و در خط وست با سرعت تمام راندیم ترینا گازش را گرفت و سرعت مجاز را رد کرد رادیو روشن کردیم تا گزارش ترافیک را بشنویم سرانجام فرودگاه نمایان شد ترینا اتومبیل را متوقف کرد و من نصف نیمه پیاده شده بودم که صدایش را شنیدم هی لو ببخشید برگشتم و چند قدم به طرفش رفتم و قلم کرد و محکم به خودش بشد کار درستی میکنی؟ نزدیک بود اشکش سر شود فوری گورتو گم کن حالا که گواینم هم شیش امتیاز منفی گرفته اگه به پروازت نرسی نه من نه تو به پشت سرم نگاه نکردم تمام راه را دبیدم و خودم را به میز پذیرش خط هوایی سوئیس رساندم سه بار اسمم را گفتم تا به توانستم اسمم را واضح بگویم و بلیتم را بگیرم کمی قبل از نیمه شب به زوریخ رسیدم با توجه به اینکه دیر وقت بود خانم ترینر طبق قولش برایم در هتل فرودگاه اتاق گرفته بود. قرار بود صبح روز بعد ساعت نه اتومبیل بفرستد دنبالم. فکر می کردم تا صبح پلک رو هم نگذارم، اما خوابیدم. خوابی سنگین و دور از انتظار و همه‌اشم هم بی سر و ته دیدم. وقت صبح ساعت 7 بیدار شدم، نمیدانستم کجایم. با بیحالی به اتاقی که برایم غریبه بود چشم دوختم. به پردگی سنگین شرابی رنگش که طوری تراهی شده بود که جلوی نور را می گرفت. به تلویزیون صفحه تخت بزرگش، به ساکم که حتی به خودم زحمت نداده بودم بازش کنم. نگاهی به ساعت انداختم که به وقت سوئیس چند دقیقه از هفت گذشته بود. همین که یادم آمد کجا هستم، دل رودم به هم ریخت و عق زدم. به موقع از تخت بیرون پریدم و خودم را به دستشویی رسندم. حالت تو داشتم. روی سرامیک های کف دستشویی نشستم. موهایم روی پیشانی ریختند صورتم مقابل کاسگی دستشویی بود. صدای مادرم در گوشم میپیچید. داشت مخالفت می کرد. ترس سراسر وجودم را گرفته بود. کار من نبود. نمیخواستم دوباره نوید شوم. نمیخواستم مردن ویل را ببینم. دوباره اوق بلندی زدم. و بالا آوردم صبحانه از گلویم پایین نمیرفت فقط توانستم یک فنجان قهوهی بدون شیر بنوشم دوش بگیرم و لباس بپوشم ساعت شد هشت به پیراهن سبز کمرنگی که شب گذشته توی ساکم چپانده بودم خیره شدم و از خودم پرسیدم آیا برای جایی که میروم مناسب است یعنی همه سیاه میپوشند آیا بهتر نیست لباسی شادتر بپوشم مثل آن پیراهن قرمزی که ویل خوشش می آمد. چرا خانم ترینر به اینجا احزارم کرده است؟ نگاهی به تلفن همراه هم کردم نمیدانستم آیا امکانش هست به کاترینا زنگ بزنم الان آنجا ساعت هفت بود احتمالا داشت لباس لباستن توماس می کرد حرفهای مادرم تا به خواهی سنگین بود کمی آرایش کردم بعد لب پنجره نشستم دقایق به کندی میگذشت هرگز به عمرم اینطور احساس تنهایی نکرده بودم. وقتی کاسه صبرم لبریز شد دیگر نتوانستم توی آن اتاق کوچک بمانم، و وسایل دقیقه آخر را جمع کردم و داخل ساک گذاشتم و از اتاق خارج شدم. روزنامه خریدم و توی سالن ورودی هتل به انتظار نشستم. هیچ چیز بدتر از این نبود که ساکت توی اتاق بنشینم. یا از تلویزیون ای اخبار ببینم و در تاریکی اتاق با آن پردههای کشیدهش احساس خفقان کنم. داشتم از بخش پذیرش رد میشدم که چشمم به کامپیوتری افتاد که گوشه‌ای بود و در معرض دید نبود. بالایش نوشته بود: برای استفاده میهمانان، لطفا با بخش پذیرش هماهنگ شود. به متصدی پذیرش گفتم: میشود از کامپیوتر استفاده کنم؟ با تکان سر تصدیق کرد. پول دادم و یک ساعت کامپیوتر را در اختیار گرفتم. خیلی ناگهانی به ذهنم رسید که می‌خواهم با چه کسی حرف بزنم. کاملا مطمئن بودم که یکی از افرادی است که میتوانم فکر کنم که همینک در دسترس باشد. وارد اتاق گفتگو شدم و پیامم را نوشتم. ریچی هستی؟ جواب داد. صبح خیر زنبور. امروز زود آمدی بیش از اینکه جواب را بنویسم ای مکس کردم عجیبترین روز زندگیم را آغاز کردم من در سوئیس هستم می دانست منظورم چیست همهشان میدانستند کلینیک موضوع بحث بسیاری از مجدله های داغ بود نوشتم میترسم ریچی نوشت پس چرا آنچای نوشتم چون تحملش را نداشتم اینجا نباشم خودش از من خواست الان هم توی هتل منتظرم تا به دیدنش بروم مکس کردم بعد نوشتم اصلا نمیتوانم هیچ عکسی بزنم که امروز چگونه به پایان میرسد. ریچی نوشت وایسمپور نوشتم چه به او بگویم؟ چطور نظرش را عوض کنم؟ با تأخیر جواب را نوشت. کلمات آهسته تر از همیشه روی صفحه ظاهر می شدند. انگار با دقت می نوشت. زنبور، اگر الان توی سویزه است، گمان نکنم از تصمیمش برگردد. بقس بزرگی راه گلویم را بست. فرو خوردم. ریچی هنوز داشت مینوشت؟ سوئیس انتخاب من نیست انتخاب خیلی های ما نیست من عاشق زندگی هستم با اینکه آرزو می کنم کاش طور دیگر بود اما میفهمم چرا برای دوستت کافی نیست چون این سبک زندگی فوق خسته کننده است خسته کننده طوری که دیگران هرگز نمی توانند به درستی بفهمند اگر تصمیمش را گرفته است اگر واقعا فکر می کند که دیگر هیچ چیز خوبی برایش وجود ندارد پس به نظر من بهترین کاری که می توانی برایش بکنی این است که آنجا حضور داشته باشی. اصلا هم لازم نیست که فکر کنی که کار درستی می کند. فقط آنجا باش. نفس در حبس بود. ریچی نوشت. موفق باشی زن بود. بعدن دوباره بیه تا ببینم چه شد بعدش اوزا برای تو سخت می شود من به دوستی مثل تو نیاز دارم انگشترم روی صفه کلی ترکت کردند و نوشتم حتما بعد متصدیه پذیرش اطلاع داد که اتومبیل آمد است هیچ تصوری از جایی که میرفتم نداشتم. شاید ساختمان سفیدی بود کنار دریاچه یا در جوار کوهستان‌های برف گرفته. شاید هم اماراتی بود با نمای سنگ مرمر و ظاهری بیمارستانی و لوح روکش طلا روی دیوار. چیزی که انتظارش را نداشتم این بود که به منطقه صنعتی برویم و به جایی که واقعا بیشتر از یک خانه معمولی نبود و دور تا دورش کارخانه بود و یک زمین فوتبال که خیلی هم عجیب به نظر می بر کف چوبی محبت قدم گذاشتم و از کنار حوض ماهی قرمز رد شدم. بعد پا به آنجا گذاشتم. زنی که در را باز کرد بلافاصله فهمید برای چه آمدم. گفت اینجاست. می ببینیدش؟ این پا و آنپا کردم. نگاهی به در بسته انداختم. خیلی عجیب بود. شبیه به دری بود که ماهای گذشته در خانه ویل بیرونشی ایستاده بودم. نفسی تازه کردم و با تکان سر تصدیق کردم. پیش از اینکه خودش را ببینم تخت را دیدم. تخت چوبی فندوقی رنگ با آن لحاف و بالش گلدار قشنگش که برای چنین فضا فضایی نامناسب به نظر می رسید و تمام اتاق را تحت و شعا قرار داده بود. آقای ترینه در یک طرف، و خانوم ترینر در طرف دیگرش نشسته بودند خانوم ترینر مثل مرده قبرستان رنگ پریده بود با دیدن من ایستاد لویزا جورجینا روی صندلی چوبی گوشه اتاق نشسته و روی زانوانش خم شده بود دستهایش را محکم به هم زده بود طوری که گویدش دعا می کرد همین که وارد شدم به من خیره شد چشمانش از قص قرمز بودند، زیر چشمش هم سیاه بود، دلم برایش سوخت. اگر کاترینا در شرایط ویل بود و پافشاری می کرد که دست به چنین کاری بزند من چه می کردم. خود اتاق روشن و دلباز بود، مثل خانه های شیک، کف شده و با قالیچه های گران قیمت، کاناپه ته اتاق روبروی روی بود که به حیات گوچکی باز میشد. نمی چه بگویم؟ اینکه سه نفری آنجا نشسته مسخره به نظر میرسید. خیلی هم عادی مثل خانواده که دور هم جمع شدند تا تصمیم بگیرند آن روز به دیدن چه جاهای دیدنی بروند. به طرف تخت رفتم. کیفم از شانه آویزان بود. گفتم. خب، مثل اینکه سرویس پذرایی تو اتاق خدمات چندانی نمیده. چشمان ویر به چشمان من گره خوردند. علا رقم همه ترس و وحشتی که داشتم و اینکه دوبار بالا آورده بودم و انگار یک سال بود که نخوابیدم یک بار احساس کردم چقدر خوشحالم که آمدم. بهتر است بگویم احساس آسودگی می کردم. مثل این بود که بخش دردناک و آزاردهن را بریده و دور انداختهام بعد لبخند زد لبخندی زیبا و دل نشین لطیف و آکنده از سپاس باورم نمیشد که خودم هم دارم لبخند میزنم گفتم چه اتاق خوبی اما بلافاصله متوجه شدم چه حرف احمقانه ای زدم دیدم جورجینا ترینر چشمش را بست از خجالت صورتم سرخ شد بیل به سمت مادرش برگشت میخوام با لو صحبت کنم اشکالی نداره؟ خانم ترینر لبخندی زورکی زد هزار تا چیز در حالتی که به من نگاه کرد وجود داشت خلاصی، حقشناسی و سپاس و کمی هم رنجش بابت اینکه دقایقی از اتاق بیرونش کردند شاید هم امیدوار شده بود که حضور من تغییری ایجاد کند شاید سرنوشت مسیر دیگری در پیش می گرفت من از کنرم رد شد و به طرف راه رو رفت وقتی عقب رفتم تا رد شود دستش را جلو آورد و به آرامی دستی به بازویم کشید نگاهمان به هم افتاد چشمانش ملایم بودند خانم ترینر اصلا شبیه خودش نبود انگار یک آدم دیگر بود بعد از من دور شد خانوم ترینر وقتی دید دخترش بلند نشد گفت جورجینا بیا جورجینا آرام بلند شد و راه افتاد. سکت بود و اکراه از سر رو رویش میبارید. آقای ترینر هم بلند شد. وقتی داشتند از اتاق بیرون میرفتند آقای ترینر دستش را پشت جورجینا گذاشت. حالا فقط خودمان دو نفر بودیم. سر تخت فیل را کمی بالا آورده بودند. برای همین ویل می توانست از پنجرهی سمت چپش بیرون را تماشا کند. از آبنمای توی حیات کوچک به طرز طلبانگیزی جویبار باریکی از آب زلال راه افتاده بود. روی دیوار گل‌های کوکب نقاشی کرده بودند. اما قاب دورش قشنگ نبود. یادم میآید با خودم فکر کردم چه تصویر مزخرفی برای اینکه در لحظات آخر عمر به آن نگاه کنی. خب من نمیخوام تلاش کنم تا تغییر عقیده بدی حالا که اومدی پس قبول داری که حقم خودم تصمیم بگیرم اولین چیزیه که از تصادف به این طرف در کنترولمه میتونم نکته ای مطرح بود که هم ویل میدانست و هم من اینکه هیچ کاری باقی نمانده است که بتوانم انجام بدم میفهمید چقدر سخت است که سکوت کنید و هیچی نگویید در حالی که ذره ذره وجودتان میخواهد منفجر شود تمام راه فرودگاه تا آنجا را داشتم با خودم تمرین میکردم که چیزی نگویم اما واقعاً داشتم میمردم ویل سر تکان داد سرانجام وقتی توانستم حرفی بزنم صدایم بریده بریده و بیرمق. جملهی که به زبان آوردم تنها حرف خوبی بود که می توانستم بزنم دلم برا تنگ شده بود احساس کردم خوشحال شد بیا جلوتر بعد وقتی تردیدم را دید اضافه کرد لطفا بیا بیا اینجا روی تخت درست کنارم به نظرم نیامد در چهرهش آرامش وجود دارد. چنان از دیدن من خوشنود و راضی بود که واقعا نمیدانست چه بگوید. و من به خودم گفتم همین کافی است. من به خواستش عمل کرده بودم. پس همین باید کافی باشد. کنارش دراز کشیدم و بقلش کردم. سرم را روی سینهش گذاشتم. حالا زربان قلبش را کنار قلبم حس کردم. و فشار ضعیف انگشتانش را در پشتم. نفس گرمش به موهایم دمیده میشد، چشمانم را بستم و در رایحه‌اش نفس کشیدم. به رغم تراوت و تازگی اتاق و بوی آزاردهنده ماده ضد عفونی کننده، باز هم بوی همان عطر گرام و های چوب صدر می‌داد. سعی کردم اصلا به چیزی فکر نکنم. فقط می‌خواستم باشم فقط میکوشیدم از راه احساسات و علاقای تدریجی مردی را که عاشقش بودم جذب خودم کنم. فقط میخواستم نشانش دهم که چه تأثیری بر من گذاشته است. ساکت بودم و حرفی نمیزدم. بعد صدایش را شنیدم. چنان تنگ دلش بودم که وقتی حرف میزد تمام ارتعاشش در بدنم جریان میافت. ای کلارک، حرفای خوب بزن. به بیرون پنجره و به آسمان آبی شفاف سوئیس چشم دوختم و قصه زندگی دو نفر را تعریف کردم دو نفری که نباید با هم آشنا می شدند. وقتی هم با هم آشنا شدند اولش از هم خوششان نیامد اما بعد فهمیدند که احتمالا در تمام دنیا فقط خودشان دو نفر هستند که همدیگر را درک می کنند. از ماجراهای مهیجی که داشتند حرف زدم از جاهایی که رفته بودند و چیزهایی دیده بودند که فکرش را هم نمی کردند. برایش از رد و برق آسمان و دریای رنگین کمانی و شبهای پر از خنده و شوخی گفتم دنیایی برایش ترسیم کردم که دور از منطقی سنتی سوئیس بود دنیایی که در آن همان کسی بود که دلش می‌خواست. دنیایی را ترسیم کردم که خودش برای من ساخته بود پر از چیزهایی شگفتانگیز و فرصت برایش گفتم گاهی زخمها جوری ترمین پیدا میکنند که باورت نمیشود. همیشه و همیشه. بخشی از وجود من خودش را به او مدیون می‌بیند. همینطور که حرف میزدم میدانستم مهمترین کلماتی هستند که در عمرم به زبان می آورم. برای همین واقعا مهم بود که کلمات درستی را به کار بگیرم. شعارهای تو خالی نبودند و برای تغییر اعیدش به زبان نمی آورد. فقط به احترام حرف ویل بود و حرفای خوب برایش زدم زمان آهسته شده و از حرکت افتاده بود فقط خودمان دو نفر بودیم که در اتاق خالی و آفتابگیر زمزمه می کردیم ویل حرف زیادی نزد جواب هم نمیداد، نه اظهار نظر خشکی می کرد و نه تمسخر هر ازگاهی سرش را به علامت تایید تکان میداد سرش به سرم چسبیده بود زیر لب زمزمه میکرد وقتی از یادآوری خاطری شیرینی به وجد نیامد صدای کوتاهی از دهانش خارج میشد که از روی رضایت خاطر بود گفتم این شیشما بهترین روزهای عمرم بودند سکوت طولانی برقرار شد چراغ واقعاً جالبه. برای منم همینطوره. بعد یک بار قلبم درد گرفت. صورتم در هم رفت. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و کنترلم را از دست دادم. او را محکم به خودم فشردم و دیگر برایم مهم نبود، هق هق گریه‌هایم او را به وحشت بیاندازد. تحمل چنین رنج و اندوهی واقعا خارج از توانم بود. اندوهی بود که مرا از از پا آورده و قلبم را پاره پاره کرده بود روح و روانم را پریشان و از هستی ساقتم کرده بود تحملش را نداشتم حقیقتا تحملش را نداشتم ویل نجوا کرد کلارک نکن لبش را روی موهایم حس می کردم کلارک نکن این کارو لطفا به من نگاه کن چشمم را بستم و سری تکان دادم لطفا به من نگاه کن نمیتونم تو از هستی خواهش میکنم نمیخوام ناراحتت کنم یا مجموعه دوباره سرم را تکان دادم موضوعی نیست نمیخوام گونم روی قفسه سینهش بود نمیخوام آخرین چیزی که میبینی قیافه درمونده و گریونم باشه <تصح> کلارک تو هنوز با موضوع کنار نیومدی قبول نداری نه لبخند را از آهنگ صدایش حس میکردم <تصح> قبول نداری کمی طول کشید تا بتوانم بر خودم مسلط شوم فین کردم و نفس امیقی کشیدم سرانجام روی آرنج بلند شدم و نگاهش کردم نگاهش محزون و خسته بود و نافذ به طرز غریبی آرامش در خود داشت گفت خیلی زیبا هستی بسخل نکن دوباره دراز کشیدم نگاهم به ساعت بالای در افتاد و یک باره حس کردم زمان دارد از دست می رفت. اشک بی اختیار از گونم سرازیر شد و از بینیم که مقابل بینیاش بود پایین قلدید. تمام مدت خاموش و ساکت به من نگاه می کرد. چنان با دقت به من زل زده بود که گویی میخواست ذره زر ذره وجودم را در خود ذخیره کند. حس می کردم از من دور شده. به جایی رفته است و به دنیایی که دیگر دستم به او نمیرسد تلاش کردم برگردانم. حال قریبی داشتم. عشقهای چشمان من روی صورت او خشکید. میخواستم هر ذره از زندگی را که در خود حس میکردم به او بدهم و زنده نگهش دارم. از اینکه بدون او برگردم میترسیدم. دلم میخواست بگویم که به چه حقی زندگی من رو به نابودی میکشانی ولی هیچ حقی از زندگی خودت به من نمیدهی و زندگی مال خودت هست. اما قول داده بودم. ویلترینر خدای مسائل مالی، ماجراجو، ورزشکار، اهل سفر و همیشه آشق. او را محکم تنگ دلم نگه داشتم و چیزی نگفتم. در سکوت و با کلماتی که به زبان نیامدند، به او گفتم عاشقش هستم. آره، آشقش هستم. نمیدانم چه مدت به همان حال بودیم. از بیرون صدای حرف میآمد و لخ, لخ راه رفتن جایی در دوردست ناقوس کلیسا به صدا درآمد سرانجام حس کردم نفس راحتی کشید. یک جورایی هم لرزید کمی سرش را عقب خب کشید تا بتوانیم هم دیگر را ببینیم چشمکی زدم و او لبخند لطیفی به من زد که در خود پوزش داشت با لحن ملایمی گفت که میشه به پدر و مادرم بگی بیان تو